عزیزان با سلام به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ما زمن بررسی کل کتاب مقدس حالا به انتهای رسالات پولوس میرسیم. پولوس رسول میدونست که در دومین زندانش در روم چیزی نمونده که کشته بشه. نفرت از مسیحیان به سطح بی ای رسیده بود. از پشت این صحنه بود که پولس آخرین نامش رو نوشت. نامهی که ما با نام دوم می میشناسیم. در درس امروز معلم ما نگاهی خواهد داشت به آخرین کلمات این سرباز ایمان که خطاب به پسر ایمانیش تیموتاوس نوشته. چیزهای زیادی هست که خدا می‌خواد از طریق این نامه به ما تعلیم بده. دایما اینه که چشم‌ها و قلب‌های شما باز بشه تا چیزی رو که خدا برای امروز شما آماده کرده یاد بگیرید. حالا با هم گوش میکنیم در این جلسه کلاس ما به آخرین نامه پولس رسول رسیدیم که نامه دوم او به تیموتاوس است من مخصوصا این چند نامه آخر رو بدون رعایت ترتیب مطرح کردم چون که این نامه آخرین نامه و آخرین سخنان پولس رسول است ما بررسی نامه های پولس رو با بررسی نامه او به رومیان شروع کردیم و با دوم تیموتاوس به پایان میبریم من مخصوصا خواستم که این نامه پولس رو برای آخر نگه دارم. نامه دوم او به تیموتائوس شهادت پولس رسول و آخرین وصیت‌های او هست. بر اساس نوشته‌های تاریخی می‌دونیم که پولس رسول در این دوره از زندانش بین دو سرباز رومی به زنجیر کشیده شده بود. اما به او اجازه داده بودند که کتاب مقدس رو تعلیم بده و با کسانی که به ملاقاتش می اومدن دیدار کنه و به اونها خدمت کنه. می دونیم که پولس از اولین زندانش در روم آزاد شد. تاریخ کلیسا به ما میگه که پولس بعد از آزاد شدنش از اولین دوره زندانش به اسپانیا رفت. پولس به شاگردانش در روم گفت که میخواد از روم دیدار بکنه تا اینکه بتونه کار خدمتش رو در اونجا هم ادامه بده. تاریخ کلیسا میگه که او این کار رو کرد و بعد از انجام خدمتش در اسپانیا به افسوس برگشت. از افسوس به ترسوس رفت و این مقارن با زمانی بود که نرون روم رو آتش زد و آن را به گردن شاگردان ایسای مسیح انداخت و آنان را تحت تغییب قرار داد. وقتی این اتفاق افتاد، پیروی مسیح در سراسر امپراتوری روم غیرقانونی اعلام شد. تمام پیروان وفادار مسیح مورد تنفر و آزار وصف قرار گرفتند. و در سراسر امپراتوری روم نه تنها توسط حکومت بلکه توسط شهروندان رومی هم مورد آزار قرار گرفتند. شما میتونید اشاره هایی به این جفای عظیم رو در نامه های پتروس ببینید. بزرگترین موج آزارهای سخت مسیحیان از آتش زدن روم و نسبت دادن آن به شاگردان ایسای مسیح شروع شد. از آنجای که پتروس و پولس به عنوان رهبران کلیسا شناخته می این دو به عنوان دشمنان شماره یک و شماره دوی امپراتوری روم محسوب می شدن. وقتی پولس دوباره در ترسوس دستگیر شد ما از محتویات دوم تیموتائوس متوجه میشیم که تیموتاوس با او بوده. کسانی که او را دستگیر کردند احتمالا رفتار خشونت آمیزی با او داشتند و به این دلیل تیموتاوس به لحاظ احساسی کاملا در هم شکسته بود. پولس در این نامه به تیموتائوس میگه من اشک‌های تو رو به یاد میارم. تیموتاوس احتمالا از این نحوه برخورد خشونت آمیز با پولس در موقع دستگیری متوجه شده بود که او از این زندان جان سالم به در نخواهد بود. تیموتاوس متوجه شده بود که شاید این آخرین زندان پولوس رسول باشه. وقتی پولوس این نامه رو برای تیموتاوس می نویسه می دونسته که شمارش معکوس زندگیش شروع شده. می که اعدام خواهد شد. وقتی پولوس برای فیلیپیان مینوشت او گفت برای من دعا کنید چون می دانم دعاهای شما منجر به آزادی من از زندان خواهد شد. او همون چیز رو به فیلیمون هم گفت. او میگه در ضمن اتاقی برای من آماده کن زیرا امیدوارم که خدا دعاهای شما را مستجاب کرده مرا به شما برگرداند اما در این نامه این رو نمیگه پولس میدونه که آزاد نخواهد شد پولس میدونه که در مسیر حرکت به سوی پادشاهی آسمانی مسیح قرار گرفته و میدونه که زمان مرگش بسیار بسیار نزدیکه این سبب شده که نامه آخر این رسول بزرگ بسیار جسورانه باشه اگر شما زندان مامرتین روم رو می دیدید، اعتبار هر کدوم از کلمات پولس رو درک می کردید. در زندان مامرتین روم که قبلا براتون توصیف کردم، در پسترین جاهای ممکن که مانند یک سیاهچال بود او رو زندانی کردند. در این سیاهچال اگر زندانی رفتار خوبی از خود نشان می داد، زنجیرهای او رو شل می تا زندانی بتونه بشینه. زندانی هرگز قادر به دراز کشیدن نبوده. زندانی رو چندین نوبت برای رفتن به دستشویی باز نمی کردم. پس میتونید تصور کنید که بهداشت شخصی زندانیان در چه وضعی بوده و بوی تعفن اونجا رو میتونید تصور کنید سیاه جایی متعفن و وحشتناک بود که اکثر زندانیان در اونجا با مشکلات سلامتی رو برو بودن علاوه بر اون فازلا شهر هم از زیر اون سیاه عبور می کرد و همین باعث می شد که رطوبت و بوی آن فضای سیاه رو غیرقابل تحمل کنه. این شرایط عمدن توسط رومیان طراحی شده بود تا روزها و شبهای طولانی زندان رو برای زندانیان سخت تر بکنن. تمامی این عوامل که زندگی رو عملاً برای زندانیان غیرقابل تحمل کرده بود امروز شکنجه های وحشتناکی محسوب میشن هدف از شکنجه این بود که درد و وحشت زیادی رو به زندانیان تحمیل کنه بدون اینکه جان قربانیان رو بگیره، تمامی این توصیف های مربوط به جایی هست که پولس آخرین روزهای زندگیش رو در اونجا گذرون. چنین سیاه چال رو برای منفورترین زندانی ها در نظر می اینها شرایط فیزیکی بودند که پولس در آخرین روزهای زندگیش بر روی زمین تحمل می کرد و از همین جا بود که آخرین نامش رو به پسر محبوبش تیموتاوس نوشت. این هنوز هم به صورت یک معما باقی مونده که پولوس چطور توانست اون نامه رو بنویسه و یا چطور توانست اون نامه رو از زندان خارج کنه. پولوس به ما میگه مرد پیری به نام اونیسی فروس بود که از زنجیرهای پولوس شرم نداشت. یعنی باکی از این نداشت که رفیق پولوس شناخته بشه. ملاقات کردن با چنین زندانی که مورد تنفر رومیان بود در آن مکان کار خطرناکی بود. پولس به خاطر نامه هایی که نوشته بود و مخصوصاً به خاطر آخرین نامش برای تیم و تاوز و به صورت کاربردی برای من و شما مورد تنفر رومیان بود. رومیان احتمال داشت که هر ملاقات کننده ای رو کنار او به زنجیر بکشن. پولس در این نامه میگه در اولین محاکمه من هیچکس جان به مرا نگرفت. همه مرا ترک کردند. خدا این عمل را به حسابشان نگذارم به نظر می‌رسید همه پولس رو ترک کردند. به استثناء چند نفر مثل پیرمردی به نام اونیسی و پزشک فداکار و محبوبش لغا بعضی از اونها نزد پولس میموندن و بقیه افراد او رو ترک کرده و فرار کرده بودن همونطور که رسولان عیسی او رو رها کرده و فرار کردن چنین به نظر میرسه که اونیسی هر کسی که بوده قادر بوده این نامه ها رو از سیاهچال بیرون بیاره یا شاید لغا توانسته این کار رو بک این نامه رو به دست خودش نوشته باشه باید او دیکته می اگر شما شمه از وضعیت زندان مامرتین و دیدگاه تاریخی از وضعیت پولس در موقع نوشتن این نامه داشته باشید سنگینی و اعتبار هر کلمه ای رو که از قلب پولس در این نامه خطاب به تیموتاوس بیرون آمده درک می من فکر می خیلی خوب می که اگر هنرپیشه ای برجسته نقش پولس رو که در زندان مامرتین به زنجیر کشیده بود بازی می کرد. به عنوان یک تهیه کننده من نام نامه دوم پولس به تیموتاوس رو به این اثر می دادم. من از این هنر پیشه می خواستم که آخرین سخنان پولس رو حفظ کنه و مطالعه کنه تا بتونه اون رو با احساساتی بزرگ و عمیق به تصویر بکشه. اگر ما این سخنان پولس رو در متن چنان فیلمی بشنویم اون موقع میتونیم سنگینی و اعتبار این سخنان رو بهتر درک کنیم بعد از تمام این مقدمات بذارید نامه دوم تیموتاوس رو ملاحظه کنید. خدایی را که من مانند اجدادم با وجدانی پاک خدمت می کنم، سپاس می گویم. همیشه وقتی در شب و روز تو را در دعاهای خود به یاد آورم خدا را شکر می کنم اگر شما هم در شرایط پولوس در زندان در زنجیر بودید آیا مشکل خواب می داشتید؟ و آیا این شب شما رو طولانی نمی پولس پولوس شب بلندی را در آن سیاه با دعا گذرده پولس یک جنگنده بزرگ در دعا بود همونطور که قبلا گفتم اگر شما لیستی از افرادی رو تهیه کنید که پولس در نامه خودش اشاره کرده که برای اونها دعا میکنه و با اونها میگه مرتبا برای شما دعا می‌کنم، در تمام اوقات برای شما دعا می‌کنم، متوجه میشید که پولس زمان زیادی رو صرف دعا میکرده اما برای تیموتاوس میگه چقدر خدا را برای وجود تو شکر میکنم. هر روز برایت دعا میکنم و بسیاری از شبها تا دیر وقت به خدای خود التماس میکنم که تو را مورد لطف بیپایان خود قرار دهد. او خدای اجداد من و خدای من است و تنها آرزویم در زندگی این است که رضایت او را فراهم سازم. نمیدانی چقدر مشتاق دیدارت هستم و تا چه حد از دیدن مجدد تو شاد خواهم شد. زیرا همیشه اشکهایی را که به هنگام ودا می‌ریختی به یاد دارم هیچگاه از یاد نمی‌برم چه ایمان خالصی به خداوند داشتی درست مانند مادرت افنیکی و مادربزرگت لوئیس و اطمینان دارم که حالا نیز ایمانت به همان اندازه مستحکم است به همین جهت می‌خواهم یادآوری کنم که آن عطای الهی را که در توس شعله ورسازی، سازی همان عطایی که خدا به هنگام دعا و قرار گرفتن دست های من بر سر تو در وجود تو قرار داد زیرا آن روحی که خدا به ما داده است در ما ترس به وجود نمی آورد بلکه ما را سرشار از محبت و قدرت می سازد و ما را یاری می دهد تا بتوانیم خود را تحت انضباط قرار دهیم شما می تونید از خلال آیاتی مثل اینها نمایی از تیموتاوس را برای خودتون ترسیم کنید تیموتاوس احتمالا شخص کمرویی بوده او باید کسی بوده باشه که در رابطه با مردم مشکل داشته همونطور که قبلا اشاره کردم من وضعیت او رو درک می کنم چون خود من سالها با خجالت و کمرویی زندگی کردم و این زمان سختی برای من بود فقط با تجربه که از روح القدس داشتم توانستم از این مشکل رها بشم و در ارتباط با مردم راحت باشم و از اونها نترسم الان میتونم بگم که بزرگترین شادی من دوستی با مردم هست اما فقط در اثر یک معجزه توانستم به اینجا برسم تیم هم احتمالاً چنین معجزه‌ای نیاز داشت پولس اعلام میکنه که وقتی بر تیموتاوس دست گذاشته معجزه‌ای صورت گرفته پولس میگه اگر از این قدرت درونی رها بشی هرگز نخواهی ترسید که در مورد خداوندمان با مردم حرف بزنی و یا به اونها بگی که من دوست تو هستم حتی اگر چه به خاطر مسیح در زندانم. در اون زمان دی زیادی بودند که نمیخواستند نسبتشان با پولس فاش بشه به نظر میرسه که پولس اینجا کنایه میزنه تیموتاوس، امیدوارم که تو هنوز ایمان داشته باشی امیدوارم که ایمانت هنوز قوی باشه و امیدوارم تو به خاطر من اگرچه به خاطر مسیح در زندان هستم خجل نباشی پولس تیموتاوس رو دعوت میکنه و میگه آماده باش که به همراه من به خاطر خداوند رنج بکشی چون او به تو در رنج ها قوت خواهد داد من معتقدم این تشویقی از طرف پولس برای تیموتاوس هست که برای مسیح محکم بیسته. در اون ایام جفاهای سخت اگر کسی میخواست مسیح را انکار کنه احتمالاً میتونست زنده بمونه پولس از تیموتاوس درخواست نمیکنه که تیموتاوس مخفی شو اجازه نده که کسی بدون تو پیرو مسیح هستی پولس تیموتاوس رو تشویق میکنه که در مسیر مخالف حرکت کنه پولس رزومه زیبایی از انجیلی که هر دو به آن ایمان داشتند رای می و با قلب بشارتیش میگه این خداست که ما را نجات داد و برای خدمت خود برگزید نه به دلیل لیاقت ما بلکه به سبب اینکه پیش از آفرینش جهان اراده فرموده بود لطف و محبت خود را به وسیله عیسی مسیح به ما نشان دهد و حال با ظهور نجات دهنده ما عیسی مسیح اراده او آشکار شده است او قدرت مرگ را در هم شکست و به ما راه ورود به زندگی جاوید را نشان داد که همانا ایمان آوردن به پیغام انجیل او هست و برای اعلام و تعلیم همین پیغام است که خدا مرا برگزیده تا رسول و فرستاده او در میان غیر یهودیان باشه به همین دلیل است که در این زندان متحمل زحمات هستم اما شرمنده نیستم زیرا می دانم به چه کسی ایمان آوردم و یقین دارم که او میتواند تواند امانتی را که به او سپرده ام تا روز بازگشت خود محفوظ نگاه دارد به سخنان و تعالیم صحیحی که از من شنیدی محکم بچسب و از آنها سرمشق بگیر. به خصوص از ایمان و محبتی که ایسای مسیح حتا می کند. آن امانت نیکو یعنی عطای الهی را به کمک روح القدس که در وجود تو ساکن است حفظ کن. من شما را به چالش میکشم اگرچه اهمیت جدی داره که بتونیم بگیم من میدونم به چی باور دارم این هم اهمیت حیاتی داره که بتونیم به همراه پولس بگیم میدانم به چه کسی ایمان آوردم و یقین دارم که او میتواند امانتی را که به او سپردهم تا روز بازگشت خود محفوظ نگاه دارد آیا میدونید به چی ایمان دارید و آیا میدونید به کی ایمان دارید این امکان هست که بتونید با ایسای مسیح رابطه داشته باشید آیا با او رابطه داری آیا میدونید به کی ایمان آوردید؟ وقتی به اولین باب از آخرین سخنان پولس به تیموتاوس نگاه می میتونید می ببینید که پولس معکدن و به طور جامع به انجیلی برمیگرده که با این مرد جوان در میان گذاشته پولس برای تیموتاوس می نویسه به همین دلیل است که در این زندان متحمل زحمات هستم اما شرمگین نیستم زیرا می‌دانم به چه کسی ایمان آوردم و یقین دارم که او میتواند تواند امانتی را که به او سپرده تا روز بازگشت خود محفوظ نگاه دارد وقتی پولوس رسول به پایان عمر خودش نزدیک شد و در شرایط بسیار سختی بود او چیزی مثل یک الهیدان نگفت که به شاگردانش چیزی آموخته او نگفتیم و من میدونم دونم که به چه چیزی ایمان دارم و خدا رو شکر می کنم که معتقدم که حق دارم من میدونم دونم که نظریه درستی دارم و میدونم دونم که تو همون رو درست می دونی و این چیزیه که اهمیت داره. پولس اینطور نگفت. پولس وقتی برای او مینوشت به او نگفت که در زندان مامرتین زندانی هست. احتمالا این برای او مهم نبود. پولس چیزی رو به او گفت که از اعماق قلبش بر یکی از مهمترین کارهایی که پولس در تمام خدمتش انجام داد نوشتن این نامه الهامی بود. پنج تا از نامه‌های پولس از زندان نوشته شده بود نامه‌های پولس یقیناً از طرف روح القدس استفاده شده تا کاری رو که به پولس سپرده شده بود ادامه بده وقتی این نامه رو میخونید در باب دو شما تمثیل‌هایی خواهید دید پولس برای تیموتاوس می می‌نویسه همچون سرباز فداکار عیسی مسیح به سهم خود در زحمات شریک باش سرباز فداکار عیسی مسیح واقعاً یعنی چی معنیش اینه که ما باید برای عیسی مسیح زندگی کنیم و به عیسی مسیح خدمت کنیم همانطور که یک سرباز از افسر فرمانده‌اش اطاعت میکنه و کشورش رو خدمت میکنه در باب دو آیه چهار تا هفت ملاحظه میکنید که پولس یک سرباز رو برای تیموتاوس مثال میزنه و بعد از اون تمثیلی از یک قهرمان ورزشی و بعد از اون هم تمثیلی از یک کشاورز رو میبینیم بعد پولس مینویسه تیموتاوس روی این مثال فکر کن به این فکر کن که این مثال ها چه مفهومی دارن و بعد اونها رو به صورت کاربردی به کار بگیر. کاربرد عملی که پولس میخواد تیموتاوس در رابطه با تمثیل سرباز به کار بگیره اینه. وقتی مردی به سربازی فراخونده میشه و به جنگ اعزام میشه، او کار و پیشش رو رها میکنه و به جبهه نبرد میره. وقتی که جنگ به اوج خودش میرسه، او دیگر خودش رو در گیر کار زمان صلحش نمیکنه. او تمام وجودش رو و حواسش رو صرف پیروزی درون نبرد میکنه. پولس این تمثیل رو برای تیموتاوس بیان میکنه و میگه عیسی ایسای مسیح فرمانده ارشد تو هست و تو رو به جنگ فراخونده خودت رو مشغول مسائل این دنیا نکن به چیزهای مادی دلخوش نکن مانند یک سرباز باش برای شرکت در جنگی که فرمانده ارشد تو ایسای مسیح تو رو به اون دعوت کرده خودت رو جدا کن بعد وقتی پولوس تمثیل قهرمان ورزشی رو به کار میبره میگه یادت باشه که هر قهرمان ورزشی باید بر اساس قوانین اون بازی عمل کنه هر مسابقه ورزشی قواعد خودش رو داره زمانهایی هست که خیلی راحت تره که به جای اینکه توپ رو به طرف مقابل به دروازه حریف بزنی توپ رو نگه داری و در بین تمام کسانی که سعی دارن مانع گل زدن تو بشن با اون بازی کنی اما هرگز نباید در جهت مخالف حریف و به سمت دروازه خودت شود کنی هر بازی قواعد خودش رو داره پولوس به تیموتاوس میگه زندگی مسیحی هم قواعد خودش رو داره و یکی از اونها اینه که باید برای عیسی مسیح رنج بکشی باید صلیبت رو برداری و بخواهی که او رو پیروی کنی و رنج بکشی تو میتونی از فیض مسیح قدرت تحمل رنج رو دریافت کنی اما رنج کشیدن یکی از قواعد بازی هست پولس همینطور طور تمثیلی از یک کشاورز رو به تیموتائوس میده وقتی پولس در مورد کشاورز مینویسه منظورش کار سخت کشاورز هست من نمیدونم چند نفر از شما در مزرعه بزرگ شدید اما اگر در مزرعه بزرگ شده باشید میدونید که کار کشاورزان کار سختی هست بسیاری از مردم مزارعشون رو ترک می‌کنند و به شهرها مهاجرت می‌کنند چون کار کشاورزی کار سختی هست. یک کشاورز در موقع کاش و در فصل درو به سختی کار میکنه اما در نهایت پاداش خودش رو می گیره. اگر در زمان کاش سخت کار بکنه، در هنگام درو خرمن خوبی برداشت خواهد کرد. اون خرمن پاداش کار او هست. پولوس این تمثیل رو به تیموتاوس نسبت میده و می نویسه تیموتاوس. کشاورزی که می خواهد از محصولش استفاده فراوان ببرد، سخت کار می کند و زحمت می کشد. تو نیز چنین کن، وقتی که پولوس آخرین سخنانش رو با پسرش در میون میذاره، بر انجیل تحکید میکنه. هیچگاه این حقیقت رو از یاد نبر که عیسی مسیح از نظر جسمانی از نسل داوود به دنیا آمد و پس از مرگ بار دیگر زنده شد. این همان پیغام انجیل است که من اعلام میکنم. من این حرفهای بعدیش رو خیلی دوست دارم او میگه اما کلام خدا رو نمیتوان بزن جیر کشید. کلام خدا همه جا پخش می شود اگرچه من در زنجیرم من نقاشی زیبایی از پولس رسول در دفتر کارم دارم اون تصویری از پولس رسول در زندان هست که یکی از رسالات الهامی خودش رو در حالی می نویسه که زنجیری به مچش بسته شده در یک لوهه فلزی زیر تصویر کلماتی نوشته شده که در دوم تیموتاوس دو نوشته شده اما کلام خدا را نمی توان به زنجیر کشید کلام خدا همه جا پخش می شود اگرچه من در زنجیرم. این کلماتی که در زیر تابلو نقاشی نوشته شده برای پروفسور دیک وودوارد مفهوم بزرگی داره. چون که او تماما فلج هست. اگرچه به لحاظی او هم به نوعی در زنجیر هست اما کلام خدا به زنجیر کشیده نشده. بلکه توسط او به کل جهان و به بیش از 25 زبان پخش می شه. او با استفاده از کامپیوتری که برای کار با صدا شده، مردنهایی برای دانشکده کوچک کتاب مقدس در چند زبان می نویسه همونطور که پولوس رسول هم رسالات الهامی خودش رو حتی زمانی که در زندان هم نبود خودش ننوشته شبان دیک وودوارت هم درسهای دانشکده کوچک کتاب مقدس رو به عنوان شبانی با تن سالم ننوشته معلولیت او و زندان پولس رسول یک عامل بازدارنده نبودند، بلکه باعث پیشرفت انجیل شدند. خداوند ما در آیه دوم از باب پانزدهم انجیل یوحنا به ما گفته که وقتی پدر آسمانی ما شاخهای پرسمر پیدا میکنه به این دلیل هست که اون شاخه در تاک ایسای مسیح باقی مونده و به این دلیل پدر اون شاخه را حرص میکنه تا میوههای بهتری به بار بیاره و اون شاخه تسلیم حرس پدر میشه زندان پولوس و تا حدودی معلولیت پروفسور وودوارد از نوع اون حرس کردن هستن. تاریخ کلیسا بر این واقعیت شهادت می‌دهد که اگرچه پولس در هنگام نوشتن رسالاتش در زنجیر بود، اون ها هرگز به زنجیر کشیده نشدن کلام خدا که توسط پولوس رسول به ما رسیده، زندانی زندانی‌های زیادی را آزاد کرده و بیش از هر نیروی دیگری در این دنیا آزادی به بار آورده. بعد پولس می‌نویسه: اما من حاضرم در راه برگزیدگان خدا بیش از اینها زحمت ببینم تا ایشان نیز نجات و جلال جاودانی را از عیسی مسیح بیابند اگر به خاطر مسیح زحمت ببینم و در راه او کشته شوم، در آسمان زندگی را با او از سر خواهم گرفت این واقعیت مرا تقویت و می بخشد اگر فکر میکنیم که در این دنیا خدمت کردن به او بسیار دشوار هست خوب است به یاد آوریم که روزی فرا خواهد رسید که در کنار او خواهیم نشست و با او سلطنت خواهیم نمود. اما اگر زیر بار زحمات دل سرد شویم و از خدمت خداوند دست بکشیم و از مسیح روگردان شویم، او نیز از ما روگردان خواهد شد. پولس رنج میکشید، اما هرگز فراموش نکنید. وقتی دوم تیموتاوس رو می خونید، یادتون باشه که پولس این سخنان رو زمانی نوشته که در اوج زحمت بوده. حتی وقتی ضعیف می شویم و ایمان و وفاداری ما نسبت به مسیح سست میشه، او نسبت به ما وفادار میمونه و به کمک ما میاد چون نمیتواند ما را که جز از وجود او هستیم از خود جدا کنه چون این برخلاف طبیعت او هست حقیقت خدا مانند یک صخره استوار میسته و هیچ چیز نمیتونه اونو تکون بده اون سنگ زیر بنایی هست که این کلمات روی اون نوشته شده خداوند کسانی را که واقعا به او متعلقند میشناسد اینها کلمات بزرگی برای تسلی دادن هستم. آیا میدونستید که این امکان هست که اونقدر مریض و ضعیف بشید که دیگه ایمانی نداشته باشی؟ آیا میدونستید که میتونید اونقدر مریض و ضعیف بشید که به لحاظ اقلانی احساسی و حتی روحی قدرتی برای باور کردن و دعا کردن نداشته باشید؟ بذارید مثالی بزنم من زنی رو می شناسم که یک مترو نیم از رودش رو که سیاه شده بود از شکمش خارج کردند او می گفت شبان اونها وقتی منو جراحی کردن خداوند رو از من بیرون آوردن من افسرده شدم وقتی شکم منو باز کردن خداوند رفت به همین سادگی به همین دلیلی که من افسرده هستم او معتقد بود که خداوند رو ترک کرده من شنیده بودم که میگفتند یک عمل جراحی به همون اندازه که به بدن شما تاثیر میذاره بر احساسات شما نیز تاثیر میکنه این تاثیر میتونه تأثیری ابدی باشه من به این زن عزیز گفتم که ما از بدن احساسات و روح و عقل تشکیل شدیم که همه در هم تنیدن اگر بدن به لحاظ جسمانی تحت تأثیر قرار بگیره اون بر احساسات عقل و حتی روح ما نیز تأثیر میذاره 25 سال بعد از اون بود که پروفسور دیک هم عملی مشابه او داشت پدر پیر او میخواست که با او کتاب مقدس بخونه او اصرار داشت که با پروفسور دیک کتاب مقدس بخونه چون که اونها هر وقت با هم بودند این کارو میکردند اما پروفسور دیک نمیخواست کتاب مقدس بخونه بعد از این که از بیمارستان مرخص شد هنوز هم نمیخواست کتاب مقدس بخونه بالاخره صبح یک روز یکشنبه پدرش گفت که میخواد کتاب مقدس بخونه و پروفسور دیک گفت برو کلیسا اونجا اونها انواع کلاس ها رو دارن پدرش گفت نه من نمیخوام با اونها کتاب مقدس بخونم میخوام کتاب مقدس رو با تو بخونم، او کتاب مقدسش را آورد و باز کرد، او کتاب مقدس پروفسور دیک رو هم آورد و اونها شروع به مطالعه کتاب مقدس کردند. به محض اینکه وارد کلام خدا شدند، همه چیز دور سر پروفسور دیک میچرخید. او به لحاظ روحانی تازه شد، به نظر میرسید که روح القدس به جای حقیقی خودش در زندگی او برگشته و او به بیداری روحانی که نیاز داشت دست پیدا کرد او معتقده که پدرش میدونست چرا او نمیخواست کتاب مقدس بخونه و چرا لازم بود که کتاب مقدس بخونه این تجربه کمک کرد که او قدر این کلمات پولس به تیم و تاوس رو بدونه حتی وقتی بسیار ضعیف هستیم تصور کنید که شما در زندان مامرتین به زنجیر کشیده شدید تصور کنید که شما چیزی رو که پولس تجربه میکرد تجربه میکنید تصور کنید که امروز زندانی بشید تصور کنید که کسانی که شما رو زندانی کردن تصمیم بگیرند شما را شستشوی مغزی بدن در بعضی از زندان ها که شستشوی مغزی با روش شیطانی انجام میشه شما رو تحت تأثیر پارازیت تا با صدای بلند و مداوم قرار میدن مثل صدای زنگ مداوم و در تمام مدت نورفگن رو در مقابل صورتتون قرار میدن تصور کنید که یک ماه به شما اجازه خواب ندن فرض کنید که بعد از یک ماه بحران بیخوابی و شکنجه های دیگر عقل شما زایل بشه فرض کنید که بالاخره اعترافی رو که اونها میخوان از شما بگیرن بنویسید و مسیح رو انکار کنید آیا شما نجاتتون رو از دست میدی نه این آیه میگه گوش کنید حتی اگر ما در باورمون خیلی ضعیف هستیم او هرگز ما رو انکار نمیکنه چون که ایمان ما مبنایی داره مانند یک سنگ زیربنایی بزرگ که این کلمات روی اون نوشته شده خداوند کسان خود را میشناسد. حتی اگر ما برای باور کردن و دعا کردن خیلی ضعیف باشیم خداوند کسان خود را انکار نمی کند حتی اگر ما به او وفادار نباشیم او همیشه به ما وفادار خواهد ماند نامه دوم تیموتاوس پر از حقایقی ارزشمند هست شما اگر بدونید این نامه تحت چه شرایطی نوشته شده این حقایق رو بهتر درک میکنید. و قادر اونها رو بیشتر میدونید وقتی که این رساله رو میخونید متوجه میشید که پولس رسول مثالی درباره ظروف خانه میده مطمئنم که تیموتاوس تمثیل های پولس رو درک میکرد در اون ایام اونها ظرفهای بزرگ و کوزه های گلی داشتند بعضی از ظرفها برای مراسم مهمانی و جشن ها استفاده میشدند و برخی برای مصارف پیش پا افتاده به کار می رفتن. بعضی از ظروف مهمانی از طلا و نقره ساخته شده بودند بقیه ظروف سفالی و یا حتی چوبی بودند در اون ایام منازل لولکشی آب نداشتند میتونید از قدرت تجسم خودتون برای انواع مصارفی که این کوزه ها داشتند استفاده کنید پولوس از این به عنوان مثال استفاده میکنه اونجا که میگه اما در خانه بزرگ نه فقط ظروف طلا و نقره می باشد بلکه چوبی و گلی نیست اما آنها برای عزت و اینها برای ذلت پس اگر کسی خیشتن را از اینها طاهر سازد ظرف عزت خواهد بود مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد برای هر عمل نیکو اما از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را میخوانند ادالت و ایمان و محبت و سلامتی را تعاقب نما در واقع پولس میگه تیموتائوس اگر تو از مسیح پیروی کنی ظرفی تلایی خواهی بود که شایسته است در دست اربابش استفاده بشه. پولس همینطور این رو برای تیموتاوس می نویسه که یکی از آشناترین آیات در دوم تیموتاوس هست. در راه خدمت به خدا سخت بکوش تا او از تو راضی شود و هنگامی که خدمتت را ارزیابی می کند شرمنده نشوی. سعی کن مفهوم کلام خدا را خوب درک کنی و آن را خوب تعلیم دهی. آیه که خوندم آیه پنزده از باب دو هست. این یکی از بزرگترین آیات دوم تیموتاوس هست. کلمه تعلیم به این معنی نیست که تمام مدت کتاب مقدس رو در مقابل صورتت و عینکت رو بر چشمت بذاری و بشینی و تحقیق کنی. کلمه که اینجا به تعلیم معنی شده، معنی نشان دادن خود هست. شاگرد ایسای مسیح فرا خوانده شده که تعلیم بگیره. این معنی کلمه شاگرد هست. کلمه شاگرد و انضباط در زبان لاتین از یک ریشه هستند. پولس در واقع به تیموتاوس میگه منضبط باش و خودت رو نشون بده نهایت سعی خودت رو بکن تا وقتی خدمتت مورد ارزیابی قرار میگیره شرمنده نشوی در حقیقت کلام خدا استادگی کن و به خاطر تعهدت به تعلیم روزی مورد تعیید خدا قرار خواهی گرفت میلیون ها نفر از ایمانداران این آیه دوم تیموتاوس رو حفظ کردند. در نامه دوم تیموتاوس عمیقا تعمل کنید و وقتی اون رو میخونید یادتون باشه که این آیه آخرین نامه پولس رسول و شهادت و آخرین وسیعت او هست. اینها آخرین سخنان پولس به تیم و, و به کل دنیا هست. هنوز چیزهای زیادی هست که باید یاد گرفت. من از شما میپرسم آیا کلام خدا رو مطالعه میکنید؟ و آیا برای بهتر یاد گرفتن کتاب مقدس نهایت کوشش خودتون رو میکنید؟ دعای من اینه که این کلاس ها شما را برای یادگیری بیشتر کلام خدا مشتاقتر بکنه. وقت ما به پایان رسیده دعای من برای شما اینه که به مطالعه کلام خدا ادامه بدید و پیرو وفاداری برای عیسی مسیح باشید. دوستان مهمترین سخنانی که فردی میگه معمولا آخرین سخنانه وقتی آخرین سخنان پولس رسول رو میخونید اینو فراموش نکنید سخنان مردی که به عنوان بزرگترین مبشر بزرگترین خادم بزرگترین الهیدان و بزرگترین معلم در تاریخ کلیسا شناخته شده پولس به تیموتاوس و به ما میگه که منتهای کوشش خود رو بکنیم تا مانند کارگری که از کار خود خجر نیست و پیام حقیقت رو به درستی تعلیم میده در نظر خدا کاملا مورد پسند باشیم. به این دلیل پیوستن شما به ما در مطالعه کلام خدا اهمیت ای داره. در ادامه بررسی عهد جدید ترتیبی بدین تا با ما همراه باشید. تا برنامه بعدی امیدوارم خداوند شما رو در دستان پرمهرش حفظ کنه.